واژه ای نیست که هرکس به ذوق خودش بتونه معنا کنه. چون خودش معنا داره. در لغت تقویه به معنای و نگهداری هست. اما در معنای دین از تقوا به اون استعمال و اصطلاحی که دین از این تقوا و از این کلمه داره، به زبان ساده اگر بخوام ارز کنم عملی به واجبات و ترک محرامات هر کس از تقوا بخواد معنای حالا چه معنای زوغی یا معنای منتصب به مکاتب و معنش غیر از معنش برآن و دوازده نور پاک امامت معنایی داشته باشه به بیراهه رفته و به کجراه انسان رو میکشه تقوا از منظر دین و از منظر 14 معصوم عمل به واجبات ترک محرماته این حداقل چیزی است که از ما خواستن اون زاد و توشه که میتونه انسان رو در آخرت که منزل همیشگی هست و بعد اونجا علال بمونیم اون زاد و توشه از همین عملی است که در این دنیا از ما سر میزنه نوزو بالله اگه عمل ناشایست باشه آخرتمون آخرت بدی خواهد بود و اگر اعمال خوب باشه آخرت خوبی این روشنه ولی اون عمل خوب و عمل بد چه عملیه؟ این خیلی مهمه دین اومده این مطلب رو به ما یاد بده که عمل خوب کدومه و عمل بد کدوم همه نهایت دین همین هست اینکه ما در حوزهها، ها درسایی می خونیم علومی رو به طور تخصصی به قول امروزی پاس میکنین و میخونین او یه بحث دیگه است. جوهره همه مباحث حوزه های علوم شیعی و دینی همین مطلب هست که میخوان تقوا رو از نگاه قرآن و گفتار و سیر و تغییر امامان معصوم معنا کنن و به دست عموم مردم برسونن دنوان یه دستوران دنیایی که انسان با اون دستور عمل بتونه زندگی سالم و راحت و هم آسایش داشته باشه هم آرامش داشته باشه در آخرت هم جای خوب ساکن میشه و اون چیزی نیست به از همین عمل به واجبات ترک محرمات فقهای بزرگ از صدر فقاهت که مرحوم امانی هست مرحوم اسکافی هست و به صورت مشخص مرهم شیخ مفیت هست رحمت الله علیه و شاگردان بزرگ اون بزرگوار سید مرتضا جناب شیخ توسی که پایگذار فقه نقلی و اجتهادی هستند تا کنون که کسانی مثل آیت الله عزمان برو رضوان الله تعالی مرحوم امام رحمت الله علیه و مراجع کنونی همه به دنبال این هستن که فقه رو به حقش برسند. فقه چی میگه؟ فقه در نهایت این رو میگه که چه عملی لازم انجام بشه در زندگی که زندگی دینی داشته باشیم چه اعمالی رو باید پرهیز کنیم اینو با تعبیر واجبات و محرمات معرفی کردم عمده چیزی که ماها قرار تو این لباس بهش برسیم و اگر برسیم موفق بودیم همین هست که به حق فخ برسیم و نسبت به زمان و نسبت به مکان و بومی که درش زندگی میکنیم اعمال واجبه و عملی که محرم هست باید پرهیز کرد رو یاد بگیریم و عمل کنیم به نوع مردم مکلف هم یاد بدیم چرا که در دنیا باعث خیر و آسایش انسانه زندگی رو پاک و زلال و نظیف میکنه این عملی به واجبات و ترک محرمات در آخرت هم زاد و توش است باعث میشه انسان در جایی به نام بهشت زندگی کنه اسمیش گذشتن جنت در زبان عربی و در زبان پارسی بهش میگن بهشت بهشتیهجایی است که ثمرهی تقوا رو به انسان نشون میده و یا و الله جهنم که ثمره بی تقوایی است حضرت در این قسمت از دعای شریف هشتم صحیفه سجادیه از میکنه خدایا من این مشکل انقدر مشکلی بزرگی است که به هیچ جا نمیتونم پناه ببرم به هیچ هم نوعی نمیتونم پناه ببرم که کمک کنه و من رو از این مشکل رهایی ببخشه مگر خودت قدرت خودت میتونه من رو از این مشکل فرار بده و رهایی بده و اون مشکل این هستش که انسان بی تغوا از این دنیا بره می تتن علا غیر اده بمیره در حالی که زاد و ای نداره در عبارات حضرات محسومین این مطلب به کرار و منرار گفته شده امام مشتبه علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفشون وقتی زهر به بدن مبارک اثر خودش رو گذاشته بود یکی از یارانشون جناده خدمتشون رسیدن وقتی حال زار حضرت رو ملاحظه کردن گریه کردن حضرت نصیحتش کرد فرمایش کردن یاد جناده استعید دل سفرک آماده شو برای سفری که در پیش دارید سفر آخرت حضرت به همین نکته اشاره میکنن که این سفر باید آمادگی داشته باشی آمادگیش و با اون چیزی که لازمه سفر راحتی خواهد بود پیمایش در راه زندگیت تو این دنیا بر اساس تقواه هست عمل به واجبات ترک محرمات عمل به واجبات و ترک هم خیلی محدود و الحق و والانصاف آسانه شیطون انسان رو میترسونه از اینکه به واجبات بپردازه به از محرمات دوری کنه آدم فکر میکنه همه رسالههای عملیه با اون قطر بالایی که داره اون تقوا هست اون تقواست ولی برای عمل قرار نیست همه اونها رو عمل کنیم گذشته ما که گذشته نیست آیندم که هنوز نیمده، اونم نیست دو تا عدمه زمان حال برای ما مهمه خدا در زمان حال گاهی برای ما تکلیف میفرسته همیشه هم تکلیف نداریم اصل بر آزادی و راحتیه اونجور که دلش میخواد انسان خدای متعال میفرمد من تو رو آزاد خلق کردم اونجور که دلت میخواد زندگی کن بعضی از مواقع در بعضی از زمانهای عمرت که زمان حال هست یه کارهایی رو رعایت کن خیلی از ساعات هست که انسان ساعت بیداری رو داره تیل میکنه و به زندگی مشغوله هیچ حکم شریم براش نیست به اینکه این که گفته میشه خب واجب انسان نماز بکنه ولی قبلش که واجب نیست اگر نمهرمی انسان داره برخورد میکنه واجبه که چشمش رو پایین بندازه حرامه که مثلا نگاه کنه و همه نگاه که حکم نداره گاهی حکم برای اعضا و جواهره میرسه اون گاهی رو اگر انسان بهش بپردازه و حکم خدا رو عمل کنه بهش میگن تقوا پس اصل در زندگی آزادی، مگر بعض از مواقع این یه قانون کلیه قانون کلی برای زندگی ما انسانها قانون آزادی و هریته اسالة الحریة الا مستسنین مگر بعضی جاها استثنا شده هرچی میخواییم بخوره دراب. هر هرچی میخواد گوش بده؟ هرچی میخواد ببینه؟ هرچی میخواد بگه هر جایی میخواد بره مگر بعضی جاها بعضی چیزا رو نباید خورد بعضی صداها رو نباید گوش داد بعضی حرفها رو نباید زد. نه اینکه هیچی نباید گفت، هیچی نباید خورد. هیچی نباید شنید. مگر اون که خدا گفته. بعضی شیزاره مثلا اجازه داده، اما اینجوری نیست. به عکسه. انسان آزاده. مگر بعضی جاها، ببینید چقدر راحته. عموم کارها، اکثر کارها، افعال، اقوال، خوردنیها، ها آشامیدنی ها نعمت هایی که میشه دید میشه شنید میشه ازش گفت همه آزاده بعضی چیزها رو در بعضی مواقع که پیش میاد حکم داره اون حکم رو باید عمل کرد اون حکمایی که در بعضی مواقع هست اون رو بهش میگن تقوا در زبان رساله بهش میگن عملی به با ترکی محرمات بیشتر از این اگه انسان بخواد حرفای زوبی بزنه مطالب اضافه بگه به بردن ازهانه و طبع انسان خواهان همین است که از حق ذهن رو بپرونه ببره مثلا به عنوان مطلب زوغی به عنوان مطلب ذهنی رضیه رو بچرخونه با شعر رو با نمیدونم یه سری توابیر و داستان و بسه و خواب و هیچی لازم نیست ما آزادیم خدا ما رو آزاد خلق کرده بعضی موارد دست رو دستور داده که من عمل کنیم اونم تازه اختیار داده عقل و ورف و شهر حکم کنی که به اون بعض دستورات انسان گوش بده بقیهش هم نخواست گوش بده حکمی نداره چوبی نمیخوره بعضی خواهانم که اضافه کاری داشته باشن خب مستحبات هم هست دوری از مکروهاتم هم هست اگر خواست اگر نخواست حکم لازم نیست در این راستا برای این عمل به بعض احکام این همه مسائل و برنامه ها و خرج شده و میشه برگزاری مراسم ازاداری اهل بید فاطمیه ماه رمضان محرم سفر و همه این هنگامهی که به عنوان شعائر الهی توصیه شده و بر افرادی لازم هست واجب هست که شعائر رو دنبال کنن تا مردم تو این راه تقوا که راه مختصر و کوتاهی هست گرم بشن تشویق بشن تقوا هدف اصلی دین و هدف اصلی قرآن و سنت پیانبر و اهل بیت علیه السلامه و همه حوزه ها در طول این هزار و چند سال هدفشون این هست که این تقوا رو هم بگن و هم انسانها رو تشویق کنن به این راه خدا